چرا که سیزده عمرهاا سر استاد جعفری این که معرفت در بابه و بذاوات از اموری بسمیه اگر علم وجدانی انسی داری میتونی شهادت کنی اگر علم وجدانی انسی نداری شهادت مشاهده لا تجوز و شهادت وان الا به علم رویتی باب باب در در همین و این رویتی چی نفت کرده بابش در وساید باز کرده به همین مضمون و نبارتش اینه همینه که شهادت بدونه نیست. و منها زرباب از امازی اواز شهادت استناده در که اولیت از یعنی قوله و اینجازت تعوید و شاهد عمل نفسی به حمایت ما هم ولو اینکه شاهدت در عمل خودش میتونه به اینها اعتماد بکنه ولی در معاملات متضاقت و شهادت نمیتونه شهادت بگید اینه که بخواست این خلقه میتونید رو بخاره با مالکین شخص مالکین ولی نمیتونه شهادت بگید زیدی من از به بخاره مالکین این لعنل علم و بین بل مشکوده بی مقام العمل علا وجه تریحیه به خاطر اینکه علمی در مقام خرید که در مقام عمل خودشه اون علم تریحیه از هر رای انسان این فیدا کنه به اینکه زید مالک این شریعه می کنندشون خرید چه علم وجدانی داشته باشه و چه از رای بکینه و یاد علم حاصل بشه که این شخص مالک این شیء. و این در مقام شهارد این موضوعی وصفیه یعنی علم وجدانی حسی میخواد آید برای من محسوس باشه این مشهود به به خلاف مقام عدای شهاده افلاعیت خوطه امنم خارج مگه یه دلیگ خارجی بیاد در مقام فرقی اثبات کنه این کبران که هر چیزی که من بتونم از نظر شرعی بهش عمل بکنم تبقه همون عمل خودم میتونم به شهاده بکنم یعنی اگر چیزی بتونم بخرم و شرحان جایز باشه میکنم شهادت بدن این شخص ماندیش دلیل خارجی میخواده دلیل خارجی یعنی دلیل خارجی که انهو انه کندمو یجوز العملو بهی منت خروق شریع یجوز الاسطناد و دلیل بی مقام شهاد اینه حد من خروق شریعی من میتونم به شغل بکنم من به بیانه میتونم عمل بکنم به ید میتونم عمل بکنم به علم رجدانی خودم میتونم من برد بکنم بنابراین در مقام شهادت هم من هم اینا میتونم اصطناب کنم اگر این قاعد در کسی قاعد باشه که مشکو بهش قاعد و ساید و ساید قاعد نیست میتونم تبدیل گوگرا عمل بکنم و شهادت هم بدم ولی اگر کسی این گوگرا رو قبول نداشته باشه رسی ساید و ساید نمیتونه از کسی باید قاعد بشیم به این عمل خودمون کماییت هرومین روایت هفت سبن قیاس الواردت بی جواز استناد ادلیت این مقام شهاده کماییت ظاهر روایت هفت سبن قیاس اینه که من به هر که بتونم عمل بکنم از گروه شریعه فقط اون میتونم شهاده درم یعنی ملازمه رو روایت هفت سبن ثابت کرده الواردت بی مقام جواز استناد ادلیت فی مقام شهادت و رمایتش هم تفسیه یعنی هیچ ابهامی درش نیست منتها بحث در سندشه و بحث در تفریق بین مقام شهادتی در این اومده و بعضی از مقامات دیگه وله اگر کسی سندشم به بگه مجبوره که عمل مشهور میمونه که این نحوه دلالتش چی باشه آیا میشه این که ایشون داره جام بمونه از این باید در نمیشه حالا ها هم ساید و ساعت نیست و من موازکم از این چیدی که گفتیم یعنی نگر قطع موضوعی صفتی باشه قطع موضوعی صفتی یعنی شما علم وجدانی باید داشته باشی علم محسوس، علم حسی نه علم از دیگه نظر اگر کسی نظر بکنه که مادامی که یقین به حیات ولدش داره روز یک در هم صدره میده مادامی که یقین به حیات ولدش داره خب در این موارد اگر علم پیدا کنه به حیات ولدش به هر قرینه ای علم پیدا کرد با قرائم به که ولدش حقی و حاضره در این موارد علم میشه موضوعی وصفی ازا باید صدقه رو بینه ولی اگر شک داشت در حیات ولد یه صدقه واجب نیست به حالت این علم موضوعی وسیع بوده در مواردی که شک داره اون وست نفسانی رو که نداره بنابراین صدقه واجب نمیشه و نمیشم استصاب بکنیم بینهولا یا جبار تصدق اندشک که پل حیات نمیشه حالا این که نه ما حیات میکنیم استثاب میکنیم حیاتی روز که جنده بوده این روزم استثاب حیات رو کنیم واجب بشه میگه استثاب راه نداره بخاطی استثاب قایم مقام فروغ میشه نه این مقام اوصاف و من این کار وصفی بوده جز اوصاف بوده جز تراغ نبوده لعجل استثاب نعیاب یعنی با خاطر اجرای استثاب حیات نمیتونیم به مواردی این طوری نظر بکنه و علق النظر به نفس الحیات یعنی مادا همی که بچه من زنده هست نه یکی مادا همی که من یقینه به دارم مادا میگه که زنده هست صدره برمان واجب باشه خب در موارد شکل در حیات استثاب کنه حیات رو بعد صدره واجب میشه و علق النظر به نفس الحیات یکی حجوب تصدق استصاب حیات ولدش قبط در این موارد تریدی میشه در اون مورد قبطیش میشه موضوع بنابراین این برای به ذهنه که قطع موضوعی وصفی رو از تریدی تشخیص بدیم در چه مواردی موضوعی وصفیه در چه مواردی نیست اگر موضوعی وصفی باشه قایم مقام نداره خواهی تنها قطع که در وجدان انسان حاصل میشه استثاب بگینه یعن و سایر امارات صفت نفسانی نیستن قطعه یک صفت نفسانی بنابراین جایگزین نداره قایم بقام نداره ولی اگر بخواست طریقی باشه جایگزین داره این نهایت حرفیشون تا این بما حالا حقیقت مطلب بنابراین مثلک مشهور و عمق مطلب چیه این مترطه بر یه نکته اون نکته رو تو این جزاهای خودمون سفقه 500 یک حالا آوردم دادم بدم آقایم ببرم اسکنش کنم این رو ازکار کنم در نیم این ها رو رو ها تکدیرش کنم سفقه پونسد به بعدش اومده همین بخصا مفتحه که ما قائل بشیم به قائل مقامی امارات یا قائل نشیم لب به مطلب چی یعنی برای مقامه فکر ها اگه شما بنواشه فیکس کنه خب متن خوندی آیه اعتمادی هم که خیلی مبسوط اینا رو توضیح میده شرح خیلی خوبیه اینا از منبع اون تایید کنه شرح اعتمادی رو و محصلی که DC تا شرح حاشیه و یک اون تجربه تدریس این رو نوشته با این همه طلبه رو میارم به کارهای فارسی خاطر اینکه عربی و این با مرگ هیچ فرقی نداره طلبه در ساید میکنه،, میکنه این باید خودکشی کنه تا صبح نشده حالا اگر خودکشی نکرد اینو تهیه کنه و وقت بذارم بخونن ما انتشاراتی شفر بعد حقیقت مطلب چیه ما یه مبنایی میخوایم، برای اینکه با اون مبنا اثبات کنیم ما یا جایگزین میخواییم دانیم این که بیاییم بگیم این قصد تاریخی باشه میشه قصد موضوعی وسی باشه نمیشه خب اگه اونطوری بسیر آخون در هاشه یه رسایت مطلقا نفیش میکنه در کفایه مطلقا اثباتش میکنه میشه میار نداره دیگه شیخ خودش نفسی میگه تفسیر میده در قصد موضوعی به این وزی و کشفی در کشفی با این مقام داریم در وزی نداریم آخون مطلقا یا نفیش کرده در هر دو اسمش یا مطلقا اصبادش کرده یعنی قول به تفسیدش خانسایی رو با علمه معلوم میشه معیاری در تار نیست اگر معیاری باشه تبقیه معیار باید حرف بدن. منتها مشهور که خایل شدن بل جمله به خایل مقامی امارات اینها تبقیه مبناشون درست سید یعنی مشهور و منحوم شیخنصاری عبدا نباید قائل بشن به اینکه امارات جایگزین بزنید موضوعی وستی میشه حرف از این چیزا نباید بزنه در خواهد اینکه مبناشون یه چیز دیگه مبنای خودشون مطلبا باید نفیش کنن. در تمام اقسامش کمانی اینکه آخان مطلبا در یک قولش مطلبا نفیش کرده یعنی اون گولو باید قائل بشه و اگر مبنا مبنای مشهور نباشه بگیم مشهور مبنا نداره یا انتجام در مبانی نداشتن خب میشین تفسیلات شیخنساری یه مقدار تبدیلش کنه. ولی اگر قائل بشیم به یک مبنای دوبومی اون مبنا مشخص میکنه که این تفسیل شیخنساری چرا اینطوریه یعنی تفسیل شیخنساری مفینه منتها مستند به یک مبنای مشخصی که باید باید مبناش رو بیان کنید پس در دو مقام بحث کنید در دو مقام یکی مقام بیان مبنای مشهور و یکی مقام مبنای دوم در مقابل مشهور. این دو تا مبنا اهمیت داره که پینها میشه انسان فکرش دو هدایت کنه برای اینکه به این نتیجه برس. دو تا مثال رو آیمه نویزدن دو تا مثال قائلن و هیچ تخریش از این دو مثال هم آنها اونها قائلن به این دو تا مثال و همه این بحث بازدرز گدر واسطه در ثبوت و واسطه در اولوز یعنی بحثا و هم دیگه پنیدت مرتبط به همه این که مثال اول او به ماه و آن تاشه کن یک مثال که مشروبش قایدن مثال دوم القطع به ماهو و کاشفون خودشتون مثال همین دوتا رو رو رو دارن و همه بحثاشون حول محور همین دوتا مثال القطع به ماهو و کاشفون القطع به ماهو و کاشفون خودشتون کاشفید در مثال اول ذاتی قبر همان که تصدیح درست می کردن در کلماتشون القطو به ما و کاش قط کاش کن قط ذات قطه کاشقیت هم ذاتی قطه بنابراین کاشقیت ذاتیه قط که خودش ذاتش قطه دیگه است. اون چیزا گلام واسطه شده یا ذاته یا ذاتیه به خاطر همین سر از این مبنادر آورده که خود جیت ذاتی قطه چون اون حد واسطش و اون واسط در ثبوتش ذاتیه چقدر باشه چه کاشفیت باشه که به عنوان به ماه و به ماه ما و اومده این ها هر دوی ها یا ذاتیه دیگه و حدیت ذاتیه قطب میشه این مبنای مشروع مبنای مشروع وقتی این باشه حدیت و کاشفیت مبتنی بر ذات باشه یا بر ذاتی طفق مبنای خودشان طفق مبنای خود مشروع در مواردی که حکم ذاتی موضوع باشه یعنی حجیت ذاتی قطعی خاشفیت ذاتی قطع در این موارد تعدی جایی نیست یعنی اصلا با این مقام نداده قرد نمیتونه قایم مقام داشته باشه چه در پریلی چه در وصفی چه در کشفی در هیچ کدام از این افتام سلاسه نباید جای گذین داشته باشه و خاطی اینکه حدیث ذاتی اینه فقط و در موارد که حکم ذاتی باشه واسطه در سبوت خورده باشه تعدیل امارات و بعضی از طول و قواهد درست میسه این مبنای مشهور اونم سمرش بنابراین مشهوری که و منهم ا و به این دو تا مثال نباید قائل به قیام امارات مقام القصب باشن مسلمو به خاطر تعضی از مورد و موضوع جایز نیست بابا اونا یه بعد به دیگه از اونا حل ما می خوام نه این دو تا مثاله مبنای مشهور این دو تا مثاله ترتیب این دو تا مثال نباید تعضی کنن اعبدا نباید هرگز قائم مقامی بزنن بیان بگن امارات با مقام قرد هست نیست در کدوم قرد هست نباید بزنن ذاتیه کاشفیت و ذاتی قرد میتونن چیزی که ذاتی قرده حدیت هم ذاتی قرده و بس در امارات نیست دیگه علل قاعده این حرفا نباید باشه این مختزای قاعده حالا بعد از بگیان بگیم اما تحب بودن تنزیدن امساین ها کرده بر مردم اومده یه حل این مسئله از این شبه این مقناه این هم اصل حکمی که اونها باید بگن مشکور طبقی نباید قائل بشه علال قایده و اساسا نباید قاید به قیام امارات مقام القط باشن مطلقا حتی در طریقی حتی در قطع طریقی نباید این رو بزنن قاید مقام نداره به خاطر اینکه که و کاشفیت ذاتی قطع فقط بقیه اینو ندارن که این مبنای اینها، مبنای در مقابل مشهور اینه که القطع به ماه و قطع کاشف القطعو به ماه و کاشف اون حدسیت این درست نیست به در مثال دوم درست نیست حدسیت متوقف و کاشفیت نیست اوضا حدیت متوقف بر کاشفیت نیست اگه حدیت متوقف بر کاشفیت بود ما به هر چیزی که علم داریم باید صدقش همن می کردیم 99 درصدش همن هم نمی کردیم قبر، قیامت، آخرت حق بلناس، حق بلله همه اینا رو میدونیم ولی هیچ خدامش برای ما حدیت نداریم بنابراین کاشفیت درست نمی خواستیم کاشفیت هر تبد رو و این مبتنی بر یک مقبوده یه داخل فرانتیز آقایین بنویسن، اینکه که منسجیت و چیزیت دو قسمه یکی منسجیت عقلی یکی منسجیت اقلائی صفحه 541 از این جزوهایی که انشالله تکلیم میشدد کنید ایناللزی احتم به الاغلا فی مقام الهو به الهوچیه این مقام کاشفیت و نیست بگیم هرچی بر ما کاشفیت داشته باشه مهمه بر ما اصلا مهم نیست علم به حلال و حرام داریم همش حرام میکنیم کاشفیت مداش نیست این همه وجدانها ها بر خلاف وجدان عمل میکنن در خوندنمون زندگیمون معامل همش بر خلاف وجدانه ما که موضوعیه وستی رو بهش اهمیت پایدید بنابراین کاشفیت حرف اول رو نمیزنه بیایم بگیم قبل ما و بعد کاشفه و ملات حجیت کاشفیته این اصلا در بین عقل اینطور نیست عقلا به کاشفیت اصلا های نه. پس یک مقوله دومی میخواست که معیار باشه اندل عقل اون مثال چیه مثال سومی رو بنویسید که جایوزین به مثال دوم میشه با اون اثبات میکنه که این مقامی باید باشی یا نباشی این که ما خدا با ما به عقل ما عقل و که الو <سؤال> خودم الانم بحث که میگه کار نمیکنه باشه من اگر اگه اینطور باشه دیگه این علم ما به چیز داریم در مقابل شعر پاور کپ که الان هیچ کس من باشه نه دیگه به بحثه. نه، مایه، علم بینجین یا آب. دو تا جهت داره. یک جهت کاوشندگی داره، یک جهت محرکیت داره. اون چیزی که مهم محرکیه، نه کاوشندگی. اینی می‌خوام بگم. پس مثال ثومی میشه. القطع به بما و محرکون حجه. واسطه در سبوت حدیت برای کاشفیت نیست خیلی چیزا برای ما میکشفه ولی حدیت نداره حدیت مال محرکیت ده مارو کاشفیت نیست اینو نمیتونیم انکارش کنیم اصلا نمیشه انکارش کرد به خاطر این ها،, ها همش اغلایی مفت به نظره در حیطه علم خیلق و علموزور اون جنبه اقلاعیش او مهمه نه اقلی یه منعزیزیت اقلی داریم مثل علم ورژانی منعزیز اقلی بینی و بینن ولی اون چیزی که در مقام محادشه باشه احتجاجات باشه به درد بیرون بخوره به درد همه بخوره منعزیزیت اقلاعیش مثال ثومی میشه که القطعه به ماهو و محرکمون خود نه یه بحث مثلا کل علوم می‌لرزه. حالا می‌گید کلام رو اینا می‌نویسن. که با کلام داره. کلام باید اهل از علم اصول یاد بگیره. ما چرا رو ببینیم از علم کلام یاد بگیریم؟ برعکس علم اصول دفتر فرمایش مرحوم میدامی محمد حاجی میدامی علم اصول کلید همه ارومه چه فلسفه چه تفسیر چه کلام چه دوبار. هر چی باشه آخری کنید برگرده به علم اصول علم اصول همه علوم ارومه علم کلام رو باید منطقه و اله اون شبهات رو کسی نمیتونه جواب بده شما درگیر شبهه جبر و اختیار رو نمیدونن تفویز و همه اینا هستید یا رو باید بتونید جواب بده جواب چیه میتونه جواب بقیه نمیتونن آجزن و آجز بودن و ثابت شد اعتبار بگیره محرد رکیت و برد اعتباری شد اعتباری اعتباری میشه اگر محرد داشته باشه اتجیت داره اگر محرد نداشته باشه اتجیت نداره اگر علم پیدا کنیم که این مایه این مثال داشتن میزنن. دو تا جهت داره یکی که جهت کاشفیتش از رابه اینکه ای مایه آب واقعا و یکی جهت محرکیتش انسان برای این استفاده کنه و من المعروم انال جهت از ثانیه اهم من جهت این یعنی جهت محرکیت مهمتر از جهت کاشفیتشه فا این نال جهت ال اولا لا یترت تبو علیهاشی و, دل لا و, و جهت این مجد ودل علم وکش لایت ت تو اوقللا و غواسط و مطالب به ولیحتتی رو و میتونید محرکیت اینطوره و انل اوقلال یا تبرون، الغچیتدللی علم به ماه و و محرکان لا مننج نعلم کاش خو از ما هر کجا محرکیت داره؟ خچیت داره هر کجا محرکیت نداره و چیت نداره؟ و چون محرکیت اختزایی اعتباریه یعنی واسطه در اروزه میشه تحقی کرد از دست به سایر محرکات بعد ندیجه که میگیریم اینه که علم و قصد ما و محرک حجیت حجیت افلا و بساط برای هر محرکی ثابته پل و نای هر محرکی حجیت داره میخواد احتمال باشه میخواد شک باشه میخواد زن باشه میخواد قصد باشه تمام حسیت ها قول نهبر و محضرکی قصد یکی از اونهاست طبق این مبنا که این مثال سه گفتیم واسطه در اروز داره و محضرکیت ذاتی نیست به خاطی که مبتنی بر داعی انسانه داعی میخواد ذاتی قصد نیست علل قاعده امارات و بعضی از اصول و فواهی جایگزین قد میشه چرا؟ شون واسط در روزه. در تمام مواد واسط در روز. اون مورد مستاقه موضوع در کار نیست یعنی قد موضوع نیست خصوصیت هم نداره اون حجیت مال قطع نیست قد یکی از افرادشه یکی از مسادقشه در واقع حجیت ثابت برای هر شیع محضرکیه میخواد زن باشه میخواد احتمال ضعیف باشه میخواد شک باشه الان شکی در مقام امتناع چطور معرکه چون یکی از بحثا که در این کتاب بود بحث اومده اینی گفتن شک تاریخی ما نداره شک موضوعی داریم مثلا شکاکتن بین 3 و 4 بر اساس و 40 خب شک موضوعیه ولی گفتن شک تاریخی نداریم شک داشتن که اولویت از واجبه نداره حجیتی نداره پس چرا شکی در مقام امتناع میگن احتیاط واجب الاشتغال و یقینی از تدیل براعت ال یقینی این حدشیتی شدی که پس شکم حدشیت داره و تمام اینها برگشتش به اینه که قوان هوتیت به محرکیت این سه تا مثال رو شما تحلیل کنید القطعو به ماهو و قطع کاشفان به ماهو و قطع کاشفان این دو تا مثال رو مشهور بایدن و سلبومی القطعو به ماهو و محرک حدشیتون اگر حدشیت به واسطه معذکیت بر گردانش بشه یقینا هر چیزی برای انسان محورگی داشته باشه، کیت داره یکیش قطعه بنابراین این مبنا و این مثال سوم امارات و باز اصول قائم با مقام قطعه تاریخی میشه اشکال نداره مگر اینکه در صفته بیایم بگیم که از اون سرسی که گفته بودیم تمام معیار علم خود شخصه یعنی علم هستی میخواد و نه هر علمی یعنی در قطع موضوعی صفتی کسی تشخیص بده تمام محیار علم مکلمه علم باشه با کاری به واقع و نجاست با حیثات این ها امثال ها ندارید علم مکلمه مهمی براید قطع موضوعی طریقی که در این موارد خب به دلیل خارجی خارج میشه و اون قاعده هم نقض نمیشه به خاطر اینکه در موضوع عقص و به شهاره گفته نفسانی، ما صفت نفسانی, با صفت نفسانی. اعتباره به واقع نداریم و هیچ نقضی هم بر این قاعده نیست علال قاعده قابل تحصیل سایر موارد، ولی تفت و مظامه قابل تحصیل سایر موارد نیست اون در یعنی یه با تدرسیمی شو همه جمهت مخلقیت بودن اینجا علم فلسفه و حلوم حقیقیه کاشفیت کنم کاری نداریم اقلاع کاری به کاشفیت ندارن این روایات های کاشفیت داره. یا نداره روایاتی که اومده حتی یره ده. ورود یعنی وصول به مخلقیه نه سودور ما بگرمی پیدا شوانیم بلدار این روایات منبلغ میگه که کسی روایتی بهش برسه عمل بکنه به اون سواب میرسه برای ما صدور مهم نیست وصولش مهمه، نیست مهمه. مهم نیست ما کار به کاشپیت نداریم حالا روایات زراره کاشپیت واقعه هست یا نیست؟ به ما چه؟ اینه که اینها برای ما محضکیت میاده مهم محضکیتشه حالا این سه تا مثال به تحلیل داره یقینا در جلسه اول کسی اینها رو شاید نتونه. ا بل اره دیه ان اشکال وارد این اشکال وارده ه ار کسي قایل بشه به اینکه منجزیت و حجیت منوط به محرکیت بر هر کسي نداره پس ن باید باشه دیگه ال جوابش چيی بله ما منعجزیت که داریم بحث می کنیم رو که منعجزیت اغلاییه داریم بحث کنیم در اصول اعتبادی منعجزیت عقلیه و در همین جز و همون سخاهات همین اینا توضیح نسبت به اصول عقایه نسبت به اصول عقایه منعجزیت عقلیه یعنی به صرف احتمال منعجز روش بر انسان این کاری به این بحثای اصولی هم نداره و برگشتش به اهمیت محتمل نه اهمیت احتمال محتملش مهمه اما برسایی که شیسته در حلقه دوم داره قائل شده به اینکه که جعل حکم ظاهری به چه ملاکیه شاره چرا این احکام ظاهریه رو جرم کرده ملاکش چه بوده؟ ملاکش اهمیت ملاک جعل احکام ظاهری اهمیت یعنی یک تضاهم حفظی برا مولا پیش اومده در اقراض خودش در واقع و در لوح محفوظ دیگه احکام به هم ریخته و بعضی از بعضی اهمیتش بیشتره. اومده به خاطر حفظه بر اون مهمش حکم ظاهری رو جرد کرد مثلا که دیگه ما اگه بیان همه جا هرمت رو اثبات کنیم مردم دو سوهرش می امسن. مشکل میشه اباهر رو جردش کرده تسهیدم ترخی این چوری در اغراض خودش تظاهمی شده بهش گفته تضاهم حفظی در مقابل اون دوتا تضاهمی که مشروع و این قائل هم این و ملاکی بعد اومده که مزاهی رو جب کرده به ملاک اهم میگرد آن آه این خودش تقص میشه یا احتمالش اهمه یا محتملش اهمه یا هر دو اهم اگر احتمالش اهم یعنی احتمال موافقت با واقع خیلی زیاده مثل خبر استقه و امسال این ها اسم ها رو گذاشته اماره یعنی اگر ملاک جعل حکم ظاهری اهمیت احتمال باشه و اغلبیت مصادفت با واقع باشه اسمش میذاریم امانه اگر ملاک جعل حکم ظاهری و حکم زاهری اهمیت محتمل باشه اسمش میذاریم اصل امانه از سالت اون اهمیت مال و محتملشه یعنی همون حلیبیت همون عبایه خیلی مهم از اینکه که حرمت رو با من اثبات کنیم بشنیم اصل عملی ور و در مواردی که هر دو مهم باشه هم احتمال مهمه هم محتمل مهمه اون اسمش گذاشته اصل عملی تنزیلی یا مقرد و مثال زده به قاعده فراغ در قاعده فراغ هم محتمل مهمه که اون تشهدین ها از یادمون نره و مفقود نباشه و همین که احتمالش اهمه یعنی انسان باید هین العمله عزیز کرنیم بعدهی یعنی موقع عمل حافظه شوشتر یاری میکرده تا اینکه بعد از عمل بخواست شرک بکنه احتمالش هم اهمه همین سه رو در حرقه دو و سوم بوم آورده مفسود بحث کرده تا دلیلی شده برای اینکه چرا جم... حکم ظاهری جرح شده حکم ظاهری که مشهوراً قائلنشون هم قائله منتها در تفاصیلشون فرق حالا غرض این بود که اگر به ملاک اهمییت باشه و حکم ظاهری بگه جرح کنیم در اصول عقائد منجقیان عقلیه در غیر اون یعنی فروعی که ما داریم الان به فرق و اصول و برش بحث میکنین منجقیت و اون حقیقت وجیه در فخ و اصول مازنه وجیهت اوغلایه وجیهت اوغلایه حول محور موحدکیه هر چیزی برای ما موحدکیت داشته باشه وجیهت داره و هر چیزی موحدکیت نداشته باشه وجیهت نداره مثل اینکه خیلی از مواد انسان علم به آب داره ولی از اون طرف آب نمیره بخاطر اینکه دایی نداره نش نیست. اگر دایی باشه موحدکیت اگر دایی باشه موحدکیت وقتی یک بحثی در این مترسل میشه که آیا محرکیت فیلیه یا محرکیت شعنیه خودو میشه در احکام تعبودیه خوب آقاین نفت کنن در احکام تعبودیه محرکیت شعنیه یعنی شما در احکام تعبودیه اصلا نمیتونید شک بکنید نمیتونی عمل کنید، محرکیت شعنیه بلی در احکام غیرتعبودی محضرکیت بهید چرا به خاطرین در احکام تعبودی واسطه ها واسطه در ثبوت هست و قابل تغییر نیست بلی در احکام غیرتعبودی واسطه ها واسطه در اروز هم. قابل تغییر اگر داعی باشه محرک از وقت ثابت میشه وقت ثابت نمیشه آن این نهایت کلام برنج این تا ممنوع معلوم باشه اشبور وايدم منگی، غرض tarihi منع قائم مقام داره. قطع موضوعی کشفی قائم مقام داره، غرض موضوعی صفتی قائم مقام نداره به خاطر اینکه صفت نفسانی رو ما میخوام، ما میخوام شما جذب پیدا کنید. اگر جذب نداری فاینو به دست نمیخوری. اماره به دست نمیخوره، جز به دست نمیخوره. ما میخوایم شما جذب داشته باشید. حالا که جلز نداریم پای مقام دیگه نداریم و یک مثال دیگه برای تنظیمش و تغییرش در یکی از مسائل مستحدثه در مرگ مغزی مفت به نظره در مرگ مغزی خوب اختلاف بین فوقه ها و با تخصیصه فوقه ها نوعا میگن نمیشه شخصی که مرگ مغزی داره نمیشه درخ میشه مرده تلقی نمیشه ولی متخصصین میگن نه این مرده و اصلا بر نمیگرد پنجاه سالم صبر کنیم بر نمیگرد. ما قول متخصصین رو قبول کنیم. به خاطر این به موضوعی از ستاقی از اینا بهتر از شک میدن مورد ها رو. یا اینکه قول فقها ها رو خوبه ها میگن نمیشه ح به مبانی نمیشه این شب، اختلاف بین فقها و متخصصیم قول متخصص رو قبول کنیم یا ها بهتر تشخیص میدن دستگاه های خوق پیشرفته دارن ولی فقها ها مبانی پیشتفته دارن قول کدو رو میشه قبول کنیم اختلاف ها. در این مسئله حالا قلب فعلا ما متخصصیم زود از اون به مرز که بوی مرزی مرز بخوره تشریعش میکنه. از نظر فقهی درست نیست اولا شخص مرگ مغزی شده رو نمیشه به خاطر که اون مرگی که برای انسان از نظر فقهی مفرحه غیر از اون مرگیه که ما برا ماها بایدن. اونا مرگ انسان رو مرگ فتسی میدونن یعنی اگر حساباشون علومشون منجر بشه به این که و تجربهشون و دستایشون منجر بشه به این که این شخص مرگ مرزی داره و بعد از مرگ مرز انسان اصلا بر نمیگرده سخت دستر بر نمیگرده هزار سال هم بر نمیگرده خب این با اینها، ها تشکیز دادن و این علم و علم حدسی میگن حدسه تجربه از دمان تخمین هیچ تخلیف هم ولی میتی که از نظر فقهی مزدهه شخصیه و به کسی دفته میشه که مرگش معلوم باشه به علم حسی فرقشون چیه؟ فرقش اینه که علم حسیه به مرگ بعد از مرگ علم حسی به مرگ قبل از مرگ اگر شخصی مرده باشه از نظر فقهی این عواردی و آثاری در بدنش ظاهر میشه بیلیش کرد میشه دستش در میاد ابروش میفته همه اینا آثار محسوس داره شخص مرده اینه میگن علم حسی که علم بعد از مرگی و این یقینی تره شخص یقینا دیگه مرده به خاطر این که ظاهر شده بنابراین علم حسی علم موضوعی حسی فقهی قوی تر از علم متخصصینه به خاطر اینکه در علم متخصصین قبل از مرگ شخصی که مرگ مغزی شده مثل این دکتر مو اینکه پنج سال در کما بود خب این نه بینیش در میاد نه سخونش در میاد نه بلکش میگفته شخص اصلا تغییر اینطوری نداره شارع گفته برای اینکه مرگ معلوم باشه از نظر من این آثار باید برش مترف بشید این در شرح لومه آثار شخص مرده علم حسی بعد از مرگ واقعیه و قویتر از علم حسی متخصصینه بنابراین وقتی در باب مرگ شاره بگه علم موضوعی حسی مبد نظره نه مصلقه علم بنابراین قول متخصصین باطل میشه در موارد مرگ مغزی ما نمیتونی تشریح کنه حالا اجازه بده و کرده باشه اینا به درست میخواده علم حسیه علم حسی علم قبل از مرگ این شخص از نظر عرفی و متخصصین مرده از نظر فقهی نه و ما موضوعات فقهی رو با موضوعات عرفی باید بینشون فرق قائل بشیم نمیشه بیاین بگیم این موضوع رو عرفی طور میگیم مگر موضوع عرفیه در خصوص مسئله مرگ موضوع فقهی شرعیه به اینکه گفت این آثار اگه درش نباشه باید منتظر بمونید وقتی نواید گفته منتظر بمونید نگفتی یک روز یا ست سال باید منتظر بمونید پس چرا منتظر نمیمونند؟ پس بینید این موانی با اون موانی اختلاف خواهشه برگشش به قط موضوعی حسی قوی از قطع موضوعی حسی متخصصین. به خاطر که ما علم داریم از نظر فقهی به اینکه مرگ باید معلوم باشه به علم حسی نه به علم حسی و علم حسی بعد از مرگ واقعیه اون آثار برایش مترفته میشه ولی شخصی که به کما رفته مرگ مردی داره همه این ها این آثار اصلا درشیست وقعیم بگیم آنها این آثار برای کش بوده که گفته برای کشفینا موضوعیت دارن این که دستش در بیاد پلکش در بیاد یفته چشمش همه اینها اینا خودش موضوعیت داره طریقیت نداره بیان بگیم اونا بنا اون آثار کشف از مرد بکنه حالا ما با دزگاه رو بگیم علمی که داریم تجربه که داریم ما زودتر فهمیدیم پنج سال زودتر فهمید پس نمیشه کلمه هایی که در حوزه درس میخونن خیلی قرص محکم با متانت با مرنات در مقابل همه انحرافات غیر باید بیستن هیچ متخصصی حق نداره شخصی که مرگ مغزی شده این رو کنه با اینکه فقها ها پس بر حرمت پس چرا عمل میکنن؟ ما یه محسسه تشکیل بدیم محسسه مرگ مغزی و یه مجاد متخصصی نجم کنیم و قرد که مرز مرگ مغزی شدیم تشکیه پس فوقه دارم میگن اینا نیاز داره به اینکه طلبه با حواست جمع در سای بخونه ترجمه نکنی رسائل و مکاسب دو تا کتاب مرتبط به حیات انسانه جوهره طلبه به همین دو تا کتاب این واقعا فراید الاسوله حالا اسمش رسائل کردن و از اون قوام افتاده این فراید الاسوله یا فریدت همه این مطالب درش هست تمام موشکاکی های فقری در این مسائل هست مهمه دیگه که شما مرتبط اگر باز علم موضوعی رو بحث کنید فقط اذا علم به خملیت شیعه نباشه که هی سی سال ساله درم مثال میزند. مرگ مغزی از ابرز مصادی باشه نیاز به مغزی داره نیاز به فقفای شما داره نیاز به این داره که حکمش رو بلد باشید بعض انسان بتونی توضیحش کنه و نظیر این مسئله زیاد الان مطلابه ولی خب مجالی براش نیست یک همایشی گرفتن برکه مرزه گفتن ما ب مجا بحیم رفتیم و و خودم اونجا گفتن که این جلسه آخره و اینکه، هی کاغذ می نوشتن آقا اینطوری بگو من ا اینجا حرف شماره بزنم یا حرف خودم باید بزنم. هی کاغذ نوشتن آقا اینطور آقا اینطور بگو هیچ کمشم نگفتم آخرشم گفتن که کا دارم میرین. نبایید اینطور باشه آبا نه هرچی متخصیصی میگن اونش با سون اینطور که نمیشه مبانی فقهی با مبانی متخصیصی فرق داره اونا باید تابع خوبه ها باشن نه که ما دنبالو نبیدیم پس اینا رو تحلیلش کنید شما خودتون باید برای این مباحث دیگه دیگرم پیدا کنید از فق، از ارتیات بگردید با هم بحثتون مثالهای رو بداشت پیدا کنید روش بحث کنید وقت بذارید که در آینده تسلط شما یک تسلط خدش ناپذیر باشه تو نباید که یک شبه کردن از فوره در برید و انسان وا بره دیگه نتونه جواب بده این تو نباید باشه خیلی متقن یعنی یک تسلطی در پیدا کنه که اگر ناینی نا در کلاستون نشست واهمه نداشته باشید و اینجان انسان نمیتونه پیش بره چون ما به هر شبهه‌ای واکنش نشون میدیم و و می‌ترسیم اصلا شبهه بکنن چون نمیتونیم جواب بدیم اینطور نباید باشه بحث بذارید مسائل تحلیلش کنید حالا اگه کم هم بخونیم اشکال نداره لاجوییش نکنید اینجا تقسیمات عراضی که نیست که این تمام نمیشه و ما میخوان سال بعد چی بخونیم سال بعد کی دیده، کی دیگه هست مهم اینه که اگر بنای آقایون بر فقاهت بر اجتهاد بر گوهه استنباته وقت بذارید پنج درصدش با منه نوید پنج درصد با خودشون آنهایی که تلاش نکنن به هیچ سمره ای رسن. و انلی سلل انسان ما تلاش خودتون وقت بذارید منم تا بتونن اینها رو هم آسونتر هم بهتر از دوره سابق میخوام ترتیب بشه، اهمی درش نمونه اجمالی درش نمونه و واقعا استفاده کنم برای یک فکر منسجم فقهی که واقعا تغییری به تمام معنا باشیم بعد از درصای دیگه که یک ادعای موندن که نکنه و درس خارج ها به کنن، برگردن به تدریس این متونی که مونده و هیچ از باب امور حسبیه هم که باشه، هیچ متولی ندن. الان شرح لمه مدرس نداره همینطور مونده ترجمهش میکنن با این هم نزید مرحوم و میان بال. میاد. اوضاع نابسامان خود ما هاست برای نابسامان ها احساس تکلیف بکنن شرح دومه شهیدثانی رو تجدیدش کنید احیاش کنید که روح خود شهیدثانی هم کمک بکنه برای پیشرفت شما اینجا پس از اینکه مالکیت الان فی ما، این مودوی لطیف، لطیف از آن حکمتی شد که این کرده یعنی منوافره من نداره نه ال قاعده ی وجودی ده باشه